and fall. كون واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين بنعم الله که بخشا جان देव و پر رحمت است پیامبر از تو درباره غنائم و اموالی که صاحب مشخصی ندارد می‌پرسند بگو آنها متعلق به خدا و پیامبر است پس از نافرمانی خدا بپریزی و اختلافات را تبدیل به صلح و دوستی کنید و اگر اهل ایمانید خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اهل ایمان گزاوند که چون نام خدا برده شود از عظمت او خوف بر قلب هایشان چیره می شود و انگامی که آیات خدا بر آنها تلاوت شود باعث رشد فضاینده ایمانشان می گردند. آنها کسانی هستند که بر پروردگارشان همواره توکل می کنند همان کسانی که نماز به پا دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز می کنند آنها مؤمنان حقیقی هستند. و نزد خداوند صاحب درجات مغفرت و روزی بیکم و كاست هستند آنچنان خداوند به حق تو را از خانت به سوی میدان جهاد بیرون فرستاد که گروهی از اهل ایمان بر این امر ناخوشنود شدند با آنکه حق برایشان روشن شده باز به مجادله با تو میپردازند چنان میترسند که گویی آنها را به سوی مرگ میبرند و آنها نظارگر این صحنه هستند بیاد آورید آن هنگام که خدا وعده داد یکی از این دو گروه یا کاروان تجاری گرش و یا سپاه جنگی آنها از آن شماست و شما دوست داشتید گروهی که آری از قدرت است از آن شما باشد چون تسخیر آن زحمت کمتری داشت در حالی که خدا می خواهد حق را با کلمات قدرتمند خیش تثبیت کند و ریشه کفر و بیرمتی را قط نماید تا حق را پاورجا کند و باطل را از میان بردارد هرچند که مجرمان از این امر ناخشنود باشند هرگاه خدا را به کمک و یاری خواستید کمکتان کرد بدانید که من شما را با هزار فرشته در صفوف منظم یاری خواهم کرد و خداوند این کار را نکرد مگر برای آنکه شادمان شوید و قلب‌هایتان آرام گیرد بدانید که هیچ پیروزی وجود ندارد مگر آنکه از جانب خدا باشد و خداوند بزرگ، مقتدر و حکیم است آنگاه خواب راحتی به برکت امنیت الهی شما را فرا گرفت و از آسمان بارانی را نازل کرد تا شما را پاک و پاکیزه گرداند و پریدی شیطان را از شما دور قلبهایتان را استوار و گامهایتان را با گرداند و یادار هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان وعه کرد من با شما هستم شما اهل ایمان را دران که میخواهند خواهند قدم دارید من نیز بر قلبهای کافران ناسب رعب و وحشت چیره خواهم کرد پس بر بالای گردنها و سرنگشتانشان ضربه زنید. و این مصیبت به خاطر آن است که با خدا و رسولش دشمنی ورزیدند و کسی که با خدا و رسولش دشمنی کند بداند که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست مجازات خداوند را بچشید و بدانید که عذاب دوزخ برای ناسفاسان است ای اهل ایمان هرگاه دیدید کافران حمله ور شدند از آنها نترسید و به میدان جنگ پشت نکنید و به جز کسی که در امر تدارکات و یا کمک است اگر کسی به دشمنان و جبهه جنگ پشت کند و پا به فرار بگذارد، به خشم خداوند گرفتار آمده و جایگاهش جهنم است و بد است، این جهنم و آنها را شما نکشتید بلکه خدا کشت و هنگامی که تیر میانداختی، تو نیانداختی، بلکه خدا انداخت تا اهل ایمان را امتحانی شایسته کرده باشد بدانید که خداوند شنوا. و آگاه است و داستان این چنین بود بدانید که خداوند بزرگ نقشه های کافران را بی اثر می کند اگر موفقیت و پیروزی بخواهید موفقیت و پیروزی نزد شما آمده است و اگر از نافرمانی دست بردارید بیشک برایتان بهتر است و اگر بازگردید ما نیز باز خواهیم گشت و بدانید گروه شما هرچند بسیار باشد باز شما را از یاری خداوند بی نیاز نمی کنند. بی شک خداوند بزرگ با اهل ایمان است ای کسانی که به حقایق ایمان دارید از خدا و رسولش اطاعت کنید و در حالی که کلامش را میشنوید از فرمان او سرپیچی نکنید مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم در حالی که هیچ نمی شنوند. بدانید بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانیاند که نسبت به حقایق کرولالند و اندیشه نمی کنند. و اگر خدا در وجودشان خیری می دید بیشک به حقایق شنوایشان می هرچند اگر شنوا هم شوند از حقایق رو می گردانند. بایراز با میکنند. يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحِلِّكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ای اهل ایمان هنگامی که خدا و رسولش شما را به چیزی می‌خوانند که مایه حیات و عزت است اجابت کنید بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش قرار دارد و همه به سوی او محشور خواهید آمد. و بپرهیزید از فتنه ای که فقط ستمکاران شما را شامل نمی شود با هم می سوزند. و بدانید که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست و یاد آورید هنگامی که در این سرزمین اندک و ناتمان بودید آنچنان که بیمزان داشتید که مردم شما را نابود کنند اما خدا شما را پناه داد و به مساعدت خیش یاری کرد و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد شاید شکر گذاشت ای اهل ایمان به خدا و پیامبر خیانت نکنید همچنین در امانات خود خیانت نورزید در حالی که به زشتی این کار آگاهید بدانید که اموال و اولادتان وسیله امتحان و آزمایش هند حالان که پاداش بزرگ نزد خداوند است ای اهل ایمان اگر حرمت خداوند را نگاه داری اون به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا میکند و گناهان شما را میپوشاند و شما را میآمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است و به یاد هنگامی که کافران نقشه کشیدند که را در بند کنند و یا بکشند و یا از شهر و دیارت بیرون کنند آنها نقشه میکشند خدا نیز تدبیر می کند و بدان که خداوند بهترین تدبیر کنندگام است و انگامی که آیات ما بر آنها خوانده شود میگویند شنیدیم اگر بخواهیم میتوانیم مثل آن را بگوییم این چیزی جز افثانه های ها نیست و به یادار هنگامی که گفتند خداوندا اگر قرآن راستی از نزد تو آمده است پس از آسمان بارانی از سنگ بر ما ببار و یا عذاب دردناکی ما وارد کن حالان که تا زمانی که تو در میان آنها هستی و تا آن هنگام که طلب آمرزش می کنند خداوند عذابشان نخواهد کرد و چرا خدا عذابشان نکند در حالی که آنها راه مردم را به مسجد الحرام می بندند بدون آنکه که سرپرست آن باشد. و کسی سرپرست آن نیست مگر کسانی که حرمت عوامر خداوند را نگاه می دارند. اما اکثر آنها این نکته را نمی فهمند و نمازشان کنار خانوی خدا چیزی نیست جسود زدن و دست زدن. پس به خاطر دستاورد کفرالودتان بچشید از آبی الهی را کافران انبال خود را می بخشند تا مردم را از راه خداوند باز دارند انبالشان را خرج می کنند اما جز حسرت نتیجهی نخواهند گرفت و سرانجام مغلوب و سرفکنده خواهند شد بدانید که کافران ناسپاس به سوی جهنم جم خواهند شد تا خداوند پاک را از ناپاک مشخص کند آنگاه ناپاکان را جمع نموده همگی را به جهنم بفرستد زیرا آنها زیانکارند به ناسپاسان بگو اگر از نافرمانی خدا دست بردارند گناهان گذشتهشان آمرزیده می شود و اگر باعمال ثابت بازگردند، بر آنها همان خواهد رفت که بر گذشتگان رفته است با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند و تمام دین برای خدا باشد پس اگر از نافرمانی خدا دست برداشتند بدانند که خداوند به عمل کردشان بیناست و اگر سرپیچی کردند بدانید خداوند مولای شماست و چه مولا و یاور خوبی است ور ان تو ان الله مولاكم نعم المولا و نعم بدانید هر گونه غنیمتی که به دست آورید یک پنجم آن متعلق به خداوند و پیامبر و خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه مندگان است و باید آن را پرداخت کنید اگر به خداوند و آنچه که بر بنده من در روز جدایی حق از باطل نازل کردیم ایمان دارید همان روزی که دو سپاق ایمان و کفر روبروی هم قرار گرفتند بدانید که خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست. است آن هنگام که شما در سمت پایین بیابان بودید و آنها در طرف بالای آن و کاروان گرش پایین تر از محل شما موقعیت بر شما چنان سخت بود که اگر با یکدیگر دیگر وعده می گذاشتید نمی با آن عمل کنید همه اینها برای آن بود که خداوند آن که باید بشود تحقق بخشد تا هر کس که کشته شود و یا زنده بماند هر دو از روی دلیل باشد بدانید که خداوند بزرگ شنوا و داناست و یادار آن هنگام که در خواب خداوند تعداد دشمنان را به تو اندک نشان داد و اگر آنان را فراوان نشان میداد از ترس سست و ناتوان میشدید و در تصمیم به جهاد کارتان به اختلاف میکشید اما خداوند شما را سالم نگاه داشت و بدون تردید او به آنچه در سینه هاست آگاه است و در هنگام که در میدان نبرد با آنها روبرو شدی خداوند آنان را به چشم شما اندک نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم نشان میداد تا مغرور شوند تا خدا کاری را که باگت و انجام بساند. بدانید همه کارها به خداوند برمیگردند ای اهل ایمان اگر به گروهی از دشمن برخوردید استقامت کنید و خداوند را بسیار یاد کنید امید آنکه پیروز شوید و از فرمان خداوند و برش اطاعت کنید و اختلاف به راه نیندازید که ناتوان می‌شوید و عزت و آب رویتان از بین می روند. و استقامت کنید که خداوند با اهل صبر است و همانند کسانی نباشید که از روی هوا و عوض و یاکاری از دیار خود بیرون آمدند تا مردم را از راه خدا باز دارند بدانید که خداوند بزرگ به عمل احاطه دارد دارند و یادار هنگامی که شیطان اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه داد و گفت امروز هیچکس نمیتواند بر شما پیروز شود، زیرا من حامی شما هستم اما وقتی دو سپاه روبرو شدند از حرف خود برگشت و گفت من از شما بیزارم زیرا چیزی میبینم که شما نمیبینید همانا من از خدا میترسم خدایی که مجازاتش سخت و طاقت فرساست یادار هنگامی که منافقن و کسانی که در قلبهاشان بیماری کفر است گفتند اینان را دینشان مغروب کرده است در حالی که نمی دانند. کسی که بر خداوند بزرگ توکل کند پیروز است و خدا مختدر و حکیم است اگر ببینی هنگامی را که فرشتگان جان کافران ناسپاس را میگیرند و بر صورت و پشتهایشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید و این به خاطر دستاورد خودتان است حالان که خداوند به هیچیک از بندگانش ظلم نمی کنند. حال روز اینها همانند فرعونیان و کسانی که پیش از آنها آیات خدا را انکار کردند می باشد پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان مجازات کرد بدانید که مجازات خدا سخت و طاقت فرساست بدانید خداوند نعمتهایی را که به قومی میدهد دهد دگرگون نمی کند مگر آنکه خودشان باعث تغییر نعمت به بلا و مصیبت شوند. و خداوند به عمل کردتان شنوا و آگاه است. وضع اینها همانند حال و روز فرعونیان و کسانی که قبل از آنها آیات پروردگارشان را انکار کردند می باشد و به سبب همه آنها را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم زیرا همه آنها ظالم بودند بدانید بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی اند که به حقایق کافرند و ایمان نمیآورند بدان آن کسانی که با آنها پیمان بسته ای بار پیمانشان را می شکنند حرمت فرمان خدا را نگاه نمیدارند پس هرگاه در میدان جنگ آنها را یافتی چنان به آنان حمله کن که حتی افراد پشت سرشان هم پراکنده شوند امید آنکه پند گیرند و اگر از خیانت گروهی بیمداری به آنها اعلام کن که با آنان نیز مثل ساگر دشمنان رفتار خواهی کرد زیرا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد آن دسته از کافران که میپندارند جان به در بردهند بدانند هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد و در برابر آنها تا می نیرو و عصفهای ورزیده محیا کنید تا به دین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را وحشت زده کنید و نیز دشمنانی را که شما نمیشناسید اما خدا آنها را خوب میشناسد. شما باید آنچه در توان دارید برای تهیه این نیروی الهی انفاق کنید و مطمئن باشید که به طور کامل به شما باز می گردد و به شما هیچ ظلمی نخواهد رفت و اگر برای سول پیش قدم شدند تو نیز به سول اقدام کن و بر خداوند توکل نما که او شنوا و داناست و اگر بخواهند تو را فریب دهند بدان که قدرت خداوند تو را کفایت می کند. خدایی که با یاری خود و وجود مؤمنان تو را تقویت کرده است و دلهای آنها را نسبت به هم سمیمی کرد در حالی که اگر را در زمین است میبخشیدی بخشیدی نمی توانستی چون این سمیمیتی بین دلهای آنها برقرار کنید اما خداوند این سمیمیت و دوستی را بین آنها به وجود آورد زیرا او مقتدر و حکیم است ای پیامبر بدان که خداوند و اهل ایمانی که از تو پیروی می‌کنند برای حمایتت کافی است ای پیامبر اهل ایمان را به جا تشویق و ترغیب کن چنانچه 200 تن با استقامت از شما باشند، می میتوانند بر 2000 تن پیروز شوند و اگر 100 تن باشند بر هزارتن تن از اهل کفر و انکار غلبه خواهند کرد زیرا دشمنان آری از فهمند اکنون خداوند بار را از دوشتان برداشت زیرا از ضعفتان آگاه است پس اگر بین شما صد تن با استقامت باشند می بر دویست تن غلبه کنند و اگر هزار تن باشند به ازن خدا می بر دو هزار تن پیروز گردند بدانید که خداوند با استقامت کنندگان است هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی بگیرد مگر آنکه در زمین کاملا بر دشمن فائق آمده باشد شما به راه دنیوی می‌خواهید اما خداوند آخرت را اراده کرده است و خداوند مقتدر و حکیم است اگر تعیید خداوند نبود بطعن از آن چه گرفته بودید عذاب بزرگی به شما وارد میشد اکنون آنچه را به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه است می توانید از آن بهره مند شوید حرمت خداوند را نگاه دارید که خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است ای پیامبر به اسیرانی که گرفته اید بگو چنان که خداوند در قلبها و نیات شما خیری ببیند بهتر از آنچه از دست دادهد به شما عطا می کند و گناهانتان را آمرزد زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشته است. و اگر نیت خیانت به تو را داشته باشند بدان که قبلا به خدا خیانت کردند اکنون شما بر آنها مسلطید، و خداوند آگاه و حکیم است بدانید کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کردند با کسانی که مهاجران را جا و مکان دادند و حمایت کردند دوستان و یاران یک دیگرند و کسانی که ایمان آوردند اما هجرت نکردند هیچ گونه تعهدی در قبال دوستی و سرپرستیان ها ندارید مگر آنکه مهاجرت کنند و اگر برای حفظ دین از شما یاری طلبند، بر شما یاری کردنشان واجب است. البته، بجز بر گروهی که با شما پیمان ترک مقاسم دارند، بدانید که خداوند نسبت به عمل کردتان بیناست و بدانید که اهل کفر و انکار یاوران یکدیگرند اگر به عوامر الهی عمل نکنید فتنه و فسادی بزرگ در زمین پدیدار می شود کسانی که حقایق را باور کردند و در راه خدا دست به مهاجرت و جهاد زدند و نیز کسانی که آنها را پناه دادند و یاریشان کردند همه اینها مؤمنان و و برایشان آمرزش الهی و رزق و روزی ارزشمندی است به کسانی که بعد از این ایمان آوردند و اقدام به مهاجرت و جهاد کردند با شما هستند بلکه از خود شما هستند. و به حکم خداوند خیشاوندان به یک دیگر سزاوارترند بدانید که خداوند بزرگ بر هر چیزی آگاه است وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قدق خداوند بلند مرتبه و عظیم از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و, علیه و سلم.